Ob. Ob. Ob. Ob. وانی فارسی بناوی خواوندی دلووان و بخشنده جگرانی خوشویستو لگرانی وانی فارسی امکاتو هموکاتی که جانتان باشو کامران بید خوشحالینکه امروج جوړ ب برنامه کارا د محمد امره با پیاده د چي بو زنګ کو نيزیک به نيو کاژمیر وختي هيو د توانه سري وخت ب ګاته پولکه اول شقام خانم یک د بینیک نګرانو لشتیک د غره پدتي شچکی ون کردبه او خانما بولای محمد دتو قصې لګلکات او کیفه پولکای ون کردو لمرو پرسيار لا محمد أكاد لقل ماندا بنتا جوى بغرين لا وطويجي أمدوانا سرتاش تسند وشي نويمان هيا كأقر يعداش دي كان باشدرا شما دیدید، شما دیدید. ایوا دیدن. شما ندیدید، شما ندیدید. ایوا نتوندی. کیف پول، کیف پول، کیفی پول. متاسفانه، متاسفانه. بداخوا. من دیدم، من دیدم. من دیتم من ندیدم من ندیدم من ندی کیفتان کیفتان کیفتان شما گم کردید شما گم کردید؟ ایوا اونونتن کرد من گم کردم من گم کردم من اونم کرد کجا؟ کجا؟ la همین جا همین جا هر الره ان كيف ان كيف ام كيف اما اما بلعم على ان الان استا ان شاب ان شاب او شوه بوليس بوليس پلیس شما گفتید شما گفتید ایوا گوتان من گفتم من گفتم من وتم من نگفتم من نگفتم من نَم گوت چون, چون. چونکه؟ آنجا آنجا ایی حتما حتما بگو من. شما بگویید شما بگویید بلن راستی راستی راستی سبز سبز سوس کوچک کوچک بچوک. کارت کارت کارت در کیفم. دار كيفام؟ لا كيف ده دا؟ پیش پیش للاي پیش پولیس پیش پولیس للاي پولیس شما برavid شما برavid ايوه برون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كيفتان كيفتان كيف كتان زود زود زو او او او او پیدا شود پیدا شود بدوز ریتو او کوماک میکند او کوماک میکند او یرمتی ادات يستا فيرمون جيوبجرين لا وتيجي نيوان محمد او خانام سلام آقا، شما یک کیف پول ندیدید؟ سلام آقا، شما یک کیف پول ندیدید؟ نه متاسفانه، من ندیدم. نه متاسفانه، من ندیدم. کیفتان را گم کردید؟ کیفتان را گم کردید؟ بله. کیف پولم را گم کردم. بله، کیف پولم را گم کردم. کیف پولتان کجا بود؟ کیف پولتان کجا بود؟ همین جا در این کیف بود، اما الان نیست. همین جا در این کیف بود، اما الان نیست. به پلیس گفتید، به پلیس گفتید. نه به پلیس نگفتم، چون پلیس را ندیدم. نه. به پلیس نگفتم چون پلیس را ندیدم پلیس آنجاست پلیس آنجاست حتما به پلیس بگویید حتما به پلیس بگویید راستی کیف‌تان چه رنگی بود راستی کیف‌تان چه رنگی بود کیفم سبز و کوچک بود کیفم سبز و کوچک بود یک کارت هم در کیفم بود یک کارت هم در کیفم بود. پیش پلیس بروید. پیش پلیس بروید. امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود. امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود. انشااءالله، پلیس حتما به من کمک می کند. انشا الله. پلیس حتما به من کمک می کند. بله، او حتما به شما کمک می کند. بله، او حتما به شما کمک می کند. استاش همان تویش با ورگیرانی کردیلا. سلام آقا. سلام اغا شما یه کیف پول ندیدید؟ ایوا کیفی کی که پولتان ندیوه؟ نه متاسفانه نه بداخوه من ندیدم من نمدیوه کیفتان را گم کردید؟ کیفکتان ون کردوه؟ بله کیف پولم را گم کردم بله کیف پولکم ون کردوه کیف پولتان کجا بود؟ کیف پولکت لچوه بود همین جا. هر آن در این کیف بود؟ لام کیف دادم. اما الان نیست. کجی است دیار نیا؟ به پلیس گفتید. به پلیس گوتوه؟ نه. به پلیس نگفتم. نه. به پلیسم نگوتوه. چون پلیس را ندیدم. چونکه پلیسم ندیوه پلیس آنجاست. پلیس لویه حتما به پلیس بگویید. حتما به پلیس بلنگ. راستی کیفتان چه رنگی بود؟ راستی کیفکت چه رنگی بود؟ کیفم سبز و کوچک بود. کیفکم سبز و کوچک بود. یک کارت هم در کیفم بود. کارت یکیش در کیفکم بود. پیش پلیس بروید. بلای پلیس بچو. امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود. هیوادرم کیفکد زو به دوزریتوه انشالله پلیس حتما به من کمک میکند انشالله پلیس بگو من یرمتیم اده بله او حتما به شما کمک میکند بله او بگو من یرمتید اده سلام آقا شما یک کیف پول ندیدید؟ نه متاسفانه من ندیدم. کیفتان را گم کردید؟ بله کیف پولم را گم کردم. کیف پولتان کجا بود؟ همینجا در این کیف بود اما الان نیست. به پلیس گفتید؟ نه به پلیس نگفتم چون پلیس را ندیدم. پلیس آنجاست حتما به پلیس بگویید. راستی کیفتان چه رنگی بود. کیفم سبز و کوچک بود. یک کارت هم در کیفم بود. پیش پلیس بروید. امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود. انشااءالله، پلیس حتما به من کمک می کند. بله، او حتما به شما کمک می کند. بله عزیزان هر بیستان محمد او خانمه بولای پلیس رینوانی دکت. او خانمه دا چه بولای پلیس محمد سیرکی دوروبر دکت بلام هیچ نادوزه توا. او دریجه با راگی خوی اداتو بروزان کو اچید. ایوه چی تایستا کیفی پارتان لیون بوا هیوادارین که لیتان ون نبو بی. لیر در دگین کتایی برنامه امروی فارسی و تا به یک گیشنوی که دیکه یک هم به دست بیاریم.